از شد بهتر قبل از دخول در علیه حجیه خبر و علیه حجیه متردد نکفی بشیم این که احتمال این سال هم نمی که مثل مردم صاحب وسائل و اخباری ها قائل به خصوص کتب مشهور هستن اینها در حیثت اصلا از بحثی کوچیک خارج باشند. دیوار در اوخران مشکل دو قول در مساله به طور کلی از بحثی کوچیک خارج میشه. قول اول که موضوع نشاطوسی شدین قول همین انصار اخباری ها و قول دوم دو قول کسانی که قابل به انقلاب نیست به اصطلاح تکفیر هستند. من در همین خلال بحث شده کردم. ظاهر وزید از افراد اینه این که اصولا تکلیف ما از متابرت سنن حوض شده به متابرت خبر یعنی خبر نموضوعیت بگاه میکنه چون ما مفصل از کردیم ظاهرم خبر شنش طریبیت صرفه این توضیحات رو ما صافرم کردیم مثل تقریم دیمت اینا شنش موضوعیت سرفه مثل قیمت بزاری یک نفر قیمت منزل رو بگه مهندس رو متخصص بستار جمعه ما اهل خوره 10 ملیون یکی بگه 12 ملیون یکی بگه 14 ملیون اینه که همه رو قبول بکنن مهندل بگیره این مهندل گرفتن مالی دیگه یعنی همه رو قبول داره. نه اینکه واقع یک چیز باشه یک یکی رسیده دو تا نرسیدم یا هر سه نه. چون واقع رτάبا صخحالایی است و رضا اون واقع مشخص نیست در اینم هست،, هست یعنی این هم یک جور رزا صخحالایی باشه اونم یک جور رزا هم یک جور ولی اینجا ما موزوریت بکنم خبر رو به اصطلاح طریقیت سر رو بگیم رو ممکنه هر دو باشه یه مقدار طریقیت باشه یه مقدار موزوریت این خلاصه نظر البته در این میان اقوار دیگری هم هست مثلا ظاهر ایدیاد مشهور مشکول اقصانه فتوار مثل تقدیم موضوعیت سر، موضوعیت ازا غالب تصویب شدن کسانی شدن صرفش اینه که فتوار و موضوعیت برش غالب اما از عبارات استاد در بین به انس شون فتوان طریقیت صرف میده مثل خبر قاعدم به این که در فتوان مثل خبر یا عده قائلم که خبر طریقیت صرف نیست. سوشه نظام موضوعی هم داره یا عده قاعدش که اصولا خبر موضوعی هم داره نداره تو کسی که میخواد بگه نداره باید اینجور آقل بشه که تحریف ما از متابقت سنت عوض شده ما به اینکه مکلف به با احکام باشیم باشید این به متابعت خبر اصلا وظیفه ما متابعت خبره ما به رضا اینا دعایی جاری ادعای نور انقلاب تکییف بکنن اصلا تکلیف ما عوض شده تکلیف ما اول این بود که احکام الهی را حالا نه تکلیف ما میگه باید خبر عمل بخونیم خب تا اینکه این خبر به این شش مظاهر که بحث وجوبیت درو معنا نداره چون هست یعنی باید وظیفه معنا نداره ما خلاصه نظر بوده که انصافش مطابق با تلیقیت اولادی، با تلیقی و خبر با تلیق صرف بکنیم فتوه رو بین تلیقیت و موضوعیت بدونیم از این ها خیلی بسید آسانی نیستنید این به تابرنگ رو کنید و تقریم و قیمتگذاری رو موضوعی از بدونیم این البته در تمام این سبس محصه این تو نزده این محصه که من میگم همه بخص آسای هم داره خیلی آسای سنگینی هم داره اصولا بحث سنگینه که و مشتهد و نخته و اصار و در قرن اقل و از زمان صحابه روی این هست بوده اما در توضیحه تو اول هم گذرچیم داشت به تو اشتار تبرید و تو بحث آروز و جاییه پس بنابراین اول ما باید ثابت بکنیم که خبر جنبه یه تلیبیت صرف داریم و هم که اول بحث زن این مطلب رو به این صورت مظرف کردیم اصولا از نظر خوقلایی چیزی که شنش تلیبیت صرفه حجیت در حق او معنا داری آنه مثلا خبر چیزی که شماید شاید فریدی یه دسته داری حجیت نمیشی این که این, این باید معنا باشی ولذا مثلا مربون نائنی و بافت اگر مربون استاد حجیت دارد کشی تنجید و تنجید و تنجید داری کتی میکرش چیه در حبر مثل ادهی دیگری و تغییر داری و همه جرال اگر ما بارنی بشیم یعنی باقاییم خودمون روزیم این چونه تصویر نیست مشکل داره تنگیز ها تردید از لوازه موجیهت خود موجیهت نیست یعنی ما یک رفت و موجیهت و جهل به فهمه دیگری باشه این خود که از موارد سنگین و حصوله و اونجا توضیح داریم که در فتوه جهل داره در فتوا یک جوره جرد روژیت برای قیمت بزاری احسان خبره که قیمت میدارن یه جوره جرد روژیت برای خبر که حریف صرفه و کاشه به صرفه این جوره دیگریه دیگر. چون توضیحات جوره سمان نمکنی جا بازه بشین از در خود درست خبر این مطمئنش شده دیشوار برای روشنتر کرد میشه پس بنابراین ما خوب درست رو که اول بحثمون اینه که خبر موضوع صرفیست موضوعیت ندار که داشت که شده. اونگه از بحث رو خبر خارجه اون برکر از بحث رو خبر خارجه البته ادهی از علمان ما بحث تصویب رو توی خبر ما تو ما سابقا تویه هزید دارن اهل سنن خیلی ضعیف تصویب تو خبر خیلی ضعیف تصویب رو در اشتهاد دارن نه در خبر تو اشتهاد این دا موضوعیت داره و اصطلاح اشتهاد پیش اونها این غیر از اصطلاح ماست اشتحاب پیش اونها این است که ما یک موضوعی داریم در شریعت مقدسه که قطعاً حکم نداره نه مثل ما که احتمال اخبار داره <تصفح> لذا که اشتحابی معنی از زمان صحابه مطبع شد گفتن قطعا ما مثلا قطعاً در موضوع شروع بخند که حد داره یا تعذیر نداریم نه در باران داریم نه در رب... از پیه هم نه چیزی اشتهاد این بود برای موضوعی که خود نداره از جاهای دیگه خود راست بکنیم این اسمش اشتهاد موضوعی که خود نداره با مراجعه به شواهد دیگه وقت در اینجا مشکلی پرد کرده. مثلا نهار کنار از درمی و که ایشو مراجعه به شواهد بکنیم به حد قرض شرگ خرم حد نداره اون مرحقه به قرض خب از دیگری میگویم نه، ما شروع به حداقل، ممکن است شراب با خوردن آن شر نداشته باشد. ناموسی است شرده سکر داد سکر هر داره دارد هر دار که آنون اینطور نمی‌کندند می‌موند. ما هم داریم ما هم داریم سرده شما ماتلر خودمان نمی‌کنند، یکی اونها می‌موند کاریه فرم. چیزی به شناء مال مسلمان. حالا که تو ما هم ارتباع بسن هر نگه شده بکنید و که خب به لاغذ جرد صدورشی شده انداری که که اما ما خب از ازیاد صدوره بکنم این غرفی به حد غرفی اینو ملحق بکنید به تحضیرات همین خورم هم دارد این, این ملحق بکنید به تحضیرات بکنش بکن تحضیر ببینید وقت می چی می گفتن این مشه که یه حدش قص اینم اصحاب و اینم این, این اشتار او قابل ارزش داره قبول میکن. اون هم که میگه داره؟ بله؟ میانه در اشتات رو مثل تعین می گرفتن ت چطور یک مهمار میگه اینجا در میری، یه معمار هم حال دواز در میری. چون آقای م آن گیر کرد که این تصویر مثلا محال از رو تبدیل نه این مادش از تصویر این بود. میگن چون این موضوعی است که گفتفل نداره خوب دقت ب این موضوع حکم نداره. و حکم اون رو از کجا به دست بیاریم؟ از کجا به دیاریم؟ مثلا فرسنه و لطا یواشواش انواع ادله که جامعه ایش تا بودی که قیاس بودی که استحسان که قیاس استحسان اینها بودی که جامعه مثل بود. بعد هم اجماع انواع اینها رو پیدا کرده برای الها مثلا میگوستن خانمی که این قطعه شده و رو باست نکرده. اجزه می این رو ما ملحق به حالت قبل استصال و حرمت برکی خبیل اجزه می کنسند نمیشه اون مال حرمت بعد جایی که خون بود یا سالان نیشه اند نه بلو ها ازن فعتز رو نسخه به این عبدالله اینجا می کنید پس در اجزه می در یک این مسلمه که نه در و نه در صحنه حکم این زن نیامده حکم این زن نیامده اینه یعنی باز ما چی کار رو بکنیم یه ایزه میگوزن استثاب جاره میکنیم یه ایزه میگوزن استثاب جاره نیمیشه ما در واقعه شدیم میکنیم یه جوز بود من اولا این دوتا تا در یعنی یک عوام اگر این کار قبول نمیکنه من اگر دو تا مشهد دو تا حکم کردن هر دو حکم الله است تو که علمای ما این گیم کردن دو تا مشهد حکم حکم الله اون مشهدی که ما میگیم که روایات رو چقدر اونا مرادشون این نبود هست ایده ای که مرادشون ایران کامل میشه اما اساس نلحاقه ادعای شهادت فاعصاب و اختر اساسش اون بود اون اساسی رو که اونا عقله کردن جایی بود که موضوعی داشت باشیم حکم باشیم. و اصلا از زبان صحابه مستر شد دیگه. اصلا تمام مبارس اشتار اینه روح اشتار اینه نه اون که ما الان می که شیعه می موضوعی بود قطعاً حکم نداشت اینی که از مبارس سنگین بود دیگه وقتی آنزم می گفتن اگر مشله و ساخت نظر یک حکم داد چه حکم الله الواقعی؟ اینی که بر ذهن شما هست که خب این معال و سلوه دوره اونا این تطور نمی این ما تو اصطلاحات همونی که حق متوقف در این باید این باید من بر, بر حق اصلا اونا خیلی مقبر نمی کردن یه نوع حدس بود می این حد اگر یک احض خوب رو این حدس این هم مطابق باخله و صدا که کتاب شهر به اشاعره نسبت داده شده ما توضیح دادیم در بحث اول سنت به خود اشعری تقیه نسبت خود در واقع اشعری که رئیس اشعاره است در کتب اصول اهل سنت گفتن کاهی اولو به تقیه هم تصویر بشه تا داده در, در کتب اهل سنت این قول کس نسبت داده شده به کبار معتزله کبار عقیل غراهان نه کبار اشعره که بعد من توجیهش رو عرض کردم اول اما ما گفتیم خواهشی ماهانه یا نشکود مامانه، بعد ماهانه یعنی, یعنی که شما ببینید تصور این دو تا اهل خبره برای قیمت خونه خونه اینگونه است. شما چکار میکنید؟ هر دو قبول میکن. ولذا جمع مگه معدله میگیریم؟ دیگه تعارض نمیگیرین تفاوت نمیگیرین در افراد بگن چرا شما در سرت رو میگیریم؟ شما میگیم اینم درست من درست. ولذا میگم جان مگه اینا خیال کردن دربا و احکار هم در باب احکام هم اجتهاد همینطوره. حسین شو. ما داریم، ما داریم ماده‌میری هست ولی در شبیه اجتهاد بلرثی یک راه خن یعنی اینطور نیست که اصول شریعت از زیر داره. مثلا فرض در در تقریمیه دیگه مثلا این کمتر نمیشه از اون بیشتر میشه خیلی نفر مشود این را اونجا هم همینطور. تو. می‌دونیم در احکام ما این دو تا یکی میگه بله یکی میگه نه. اون که میگه بله استناش به استثار اون, اون که میگه نمیستناش به برانسه هر روش هم در رسول شدید چی میوازن؟ گفتن برای ما هر با بژه اگه مشهد باشن نه افرادا آزیب هم بسید تقنیش فرم ننفاد و لذا هم تخلیق بودن در اختلاف فتواه تخلیق غال بودن چون تعلیش حتاب نمیکردن اصلا اشتهاد اولی اینه آلا بعضها تطور بدا کرد نصف ما، اشتها در اصطلاح اول این بود که جالی ما دلیل نداریم حق نیامده از فرد وقتی ما الان که میگیم در شیعه می ممکن است خب شو آمازه باشه میشه بقیه الله باشه این نبود تو دونیور حساب این نبود تو دونیور <تصح> اول این نبود حالا الان باشه بقیه اطلاح باشه پیش امام هم باشه این نبود اونی که این بود این بود که ما الان مسلم میگیم چهار کار این راه رو من دیگه این بحث گذشته و قایوده من بعدی بسیار تکرار میکنم. با خاطر اهمیتش رو اینکه چطور در کلمات ما یه اشتباهاتی وجود داره. اصل اشتباه این بود. البته اندزه شیعی مطلب مرفوض بود. چون از آد بود ما میشینیم و جرافیه کتاب و اون بحث دیگری است. اونا میگویند نداریم شیعه میگوی داریم. حالا اون بحث دیگری است. اصلا شیعی نهفی الزمان همیشه عرض میکنم معلومه مقنیم علی افنانی توی اعلم صحابه است نبید این معمل که علی افنان توی مثل صحابه از اونو خیاس بکاره و خیاس بکار اونو خیاس بکاره <تصحنت> و خیاسی شن بهدن معلومه مقلیم علی افنانی توی اعلم صحابه اصولا زیربنای علمی حذر با اونا فرد می کنن اونا یک دیربنایی دارن که منتعی می به قیاس و استهثام و رعی و اجماعی دارن. من هر چی که میام از کتاب الله یا از صنات نبی تو که دارم اونام دارم؟ هم دارم تصدافاً گیدین صورتش که شخصی دیده باشه ما نداریم از ام سلمه که میروزی نوبت رم بود پینامان پیش پینام پوستی او همجور سوال میکرد و مینوش او پوست پر از مسئله میکرد و از خب ببینید بحثی که بود این بود چیه؟ اما این بحث من زنگ کرد که علی ابن روی تاره بود همه اینها یک کتابان اوصول نه درزا خود دقیقه دو نحوه تفکره دو نحوه یه تفکره نه اینکه یک نحوه تفکر باشه تن هر عالمیت افراده ای تن رو این جهت بود اصلا نقطه ای صرف فنگیشی بود الان از این بحث خارج نشد پس اگر ما در خبر باید آبده به این قلاب تکلیف شدیم اون از بحث رو جهت خارجه یک دو اگر مقاله اخباری دارن بیاین ظاهرتون هم از بفرمایید حالا خودمون خود من این رو دوزو ادله حجیت میگرفت یعنی دوزو قائل به حجیت میگرفت احتمال قوی داره خارج بشه وقتی عرض کردیم این کار چون مرحوم علامه آمد این استلام رو درست کرد در برنامه اشکم بعد از ایشان خب با مشکل کرد من توضیحاتی جهت عرض کردم یک مشکلی تو اینجو به هر که ما اگر این خبر زعیفه از خواب عمل کردن جابه رو باشیم یه راهش این بود مثل شهید سانی و اینها آورده یه راه دیگه دیگر راهی بود که مرحب مولا محمد عبید است داره خب با حالا مرد مولای استی خب تون رستی این راهی تون رستی با حالی شوخه مرد مولا تو مرد مولای استی میشه این کارش که در این کتاب فوارد المدنیه ایشون آمد کار رو عوض کرد به این ص که اصولا اون راهی روی که آروم و اصولین اصلا کلن باطله این اصلا مبنا رو حوض کرد که کلن باطله دقیقه میفرمیم این مشکلی که پیدا شد در حقیقت این بود که اون راه رو کلن ایشون باطل گرفت و در بحث خود جیهد ایشون معتقل شد که ما اصلا بحثه یعنی مضمون فراماندین رو ما مهمش اینه که اهل بیت توسل به ما به اصطلاح فرمودن که شما بگید راه‌های کین‌ها رفتن نرید و وظیفه رو خیلی مروونه مولا محمد امین اصرار داره و کلمه اصول اربعه وظیفه رو در این 400 تا اصل قرار دادن و علمای شیعه اینا تدوین کردن مرتب کردن نسخ رو دادن ما رسیده و اصولاً وظیفه تابع شریمون ما به اینها عمل میکنیم به همین روایات دیگه نیازی به حساب اون بحثایی به اصلاح من اضافه برده است به حجیه خبر نیست مدهوم لاما حمد امین استرابادی حدود 1033 یعنی قرن 11 هم اول قرن 11 هم وفاتشه مدتی مکه بوده موجا داره مکه بوده مدتی مدینه بوده این دوتا کتاب رو همونجا نوشته اصلا فوازه مدنی مکه یا چیدم من ندارم چیزی برمزش امتونه نرس بوده بعد از ایشان انصافت این گرفت حالا یا میگن شد زمان سفریه بود و مثلا وقال نوزه حکومت آفونده و ملایه بود و تمام بوده چی بود حالا بعد از مرمون ملا محمد امین گرفت و خب ادید یا یا از حال ما مثل مجلسیه این اوشده ها را آمجی و دیگران و همین مروفید فاشانی دیگران و همین راهی رو که رفتن رو آبازن و مرموم آقای شهر رحاملی در این خاتمه مسائلش ایشون فوائدی نوشته از و زمان سفره خالبا مسائل دوازده دوازده دوازده فوائده در خاتمه کتابش نوشت مرموم حاجی نوری هم در مستقرد این دوازده فوائده داره مثل ایشان و همین حضر دو, دو فوائده شه سه فوائده شمان فرمی کند دیدم استفاده الان کسیم کم زیاد رو کنم بعضی توائدشونه هست که از خودش فائدی دیگه بفته اما عدمش دوازده هست مستدرک هم و انصافا هم خود تا حد زیادی خاتمه مرمون شهر خور توائد خوبی داره و خاتمه مستدرک بسیار مفیده تا به واسه خصوصا صاحب این کتاب در جالی یا حدیث بخونید و بخونید یک دوره این خاتمه مستدرک بکنید خیلی مفید است خیلی زحمت کشیده من قبلا گفتم ما وجیوری در این مستدرک مثلا در این بحث خاتمه و خاتمه البته اگه که ایشون قبول نذارن نکند اما به لحاظ تطبع بنظر من فوق العاده است یعنی واقعا فکر می‌کنم از زمانی تا زمان ما در بخش تتبول در می های معرووط ما کسی نی باش ای نداری معوع های آشانان تلی توستریگه وقتی این مطلب رو معوع های از توتایی گفتن گفت بله من ندارم همین پسا یعنی همی های توستری نش رادن وکن آ ها جنوری پیش از او تکبر داره خیلی مرد موفقی تجرواور واقعا هم مساد خوبی در اختیارش بوده هم واقعا عمرشو رو کرده در اینجه واقعا تأجیب آورم بخشتنات زحماتی که دارو ایشان بسیار خوبصه و سایه به خواب و انوار خواب و خیلی خوابهای عجیب و غریب و بعد فوائد ما در اصنایش خیلی یکیب انسان دارو سلامش میکنه چارجه چارجه چاپ شده این سی سال هم سی سال خیلی راحت شده خاتمه هم چاپ جرید شده ای اخیران گرم چاپ شیش تموم شد موضوع شیگر هف این خاطرن بسیار اب نافعیه ایه. که زاره کهبار همین در دست کهتون خاض لکیفیز بازار نحشون میکنن دافنی معوع های موجنودی و استاد ما از قول موع های شباس قوم سا مقایشون قبلند که معوع و شباس باران یه روز صبح خصوزن حمام حاجین توی روی حمام به هم رسیدیم شما شباس شا شاید روشون مییم ما با به هم رسیدیم. صحبت شده اصلا صحبت حاجی نوری که ادمای اهل سنت مثل کشف زنون حدود 500 رساله و کتاب رو به جلال جلالدین سیودی نسبت دادن یعنی خیلی به شده تقریبا میشه که کشف زنون هر تفیش که باز بونه یه کتاب سیوشی هست تقریبا حالا 150 2 سفر درآمدی که باز بونه از بس زیاد داره بعد گفت که ها این کلمه بعد حاجین روی فرمود، اون زحمتی که من در مصدر کشیدم بیش از زحمتیست که ایشون در کل این 500 ساله کشیده اون کاریش من درده از اون پونسدر ساله ایشون راست میگه انصافا از کم سندش که بسیم خود برمویه کاملا سیه بقول آقای این سیه علایی خود من هم انصافا تسبیح میکنم انصافا زحمتی که حاجین روی در مصدر کشیده انصافا مؤتمده قابله است مرحومه این چون لطیف آشنایی با مبانی اخباری ها من گفتم قبل از اینکه وارد بحث و حجیت بشیم مرحومه این بحث رو به اصطلاح اینجا مفرح بکنیم شیخ هم داره که به بعضی اخبار ها نسبت شون قطعی بودن روایی ها سه و یا نسبت بهش حجیت کتبر دو تا مبنابی این ها مرحومه آیه و وسائل فوال دوازدرگانه داره البته از فوائدی که به درگیل بحث میکنه تقریبا از ششم. ششمه ای در فایده ششم سرمی میکنه که بعضی عبارات رو بیاره که اینه اصحاب ما کتبی رو تسبیخ به تعلیف کردن که خیلی رو زحمت کشیده شده چون مقدار زیادش هم ما در اصناع گفته بودیم حالا این عبارت من برای خال نبوده فایده میکنم یکی اول عبارت کتاب مرحوم صدوغه البته مرموم ها صاحب و صاحب عبارت رو تحلیل نکرده اما ما خب اما تحلیلش هم که کردیم بعد ایشون داره که من میگه که یکی از سادا ترجل دار دیدن و من چی گفت بعد میگه ولم اقصدسیه ولم اقصدسیه قصد المسنفین اله ایراز جمعی اما رو البته احتمال این دیگه رو رو کرده روهور باشه پس همین شمال همون روهور باشه بلقصد تو را به ما افتی به و احکامو به صحته نگه آقاییون سؤال کرد که صحیح قدما چون سیخ صدو گفته احکامو به صحته پس این رباره صحیحه و تقضی انهو لیکن مرادشون از صحت هم نیست که با بابا به با با با با با تفسیر رو ده و تقضی انهو حجتون بین یا بین رب بی جلد ذکرو مراد از صحت و جیب و از ایشون یعنی این مبنای مرموم شیخ ص و جمیع امافی في من کتب مشهوره علیها المعول و علیها المرجعه مرجع مثل کتاب حریزه بن الله سجستانی که توضیحاتی داره و کتاب عوید الله بن حلبی و کتاب کتب علی بن منزیار الاهوازی و کتب حسین بن سعید البته این کتب حسین سعید به برادرش هم نسبت داده شده چون دو برادر با هم نوشتن که از عجایب اینه که برقومه نجاشی ترجمه حسین سعید نداره ترجمه در ضمن ترجمه حسن بن سعید داره شد. و نواظر احمد بن محمد بن حیسا و کتاب رحمل صدر بن عبد الله و جام شیخ نا جام شیخ نا محمد بن حسن ولی و نواظر ابن ابي عمر این نواظر هر ایشون چند تا فریدین چی ویژه بوده در اختیار بوده و کتاب المحاسن احمد بن عبد الله و رسالت ابي الی این وقی را هامنل اصول و مصنفات این چند بار از گردم ایشون بیگه من کتابم از این اصول از کردم احتمالا مرادش از اصول مثل کتاب حلی باشه مرادشم از مصنفات مثل کتابم از این سعید باشه اللتی طور غیله ها معروفتون فی فکرست کتاب اللتی رویتوها از کردم این کلمه رویتوها سه دور زرد شده در این اختلافی بحثم داره. کتابی هست تو فاحت العالم بشرح خوده مولانا. این مثلا شماش اونجا میشونه. تا زیر یک چاپ قدیم داره تا زیر اصولا از نوع معاصر چاپ شده. اونجا میشونه مروهای به اصطلاح بحر ال. مرو واسه جهتن. این رویتو زرق شده، رویتو زرق شده، رویتو هم زرد شده. سه زرق شده. لکن صحیحش رو ویتورس اشاره به اجازه اجازه داده شده به من که اون رو روایت بکنم رو نه روایتو در این عبارات در عبارات. نه همه جا حالا شرطی داره که چون نمیخوام بازی واضی بشن در این عبارات رو مهمه اما وقتی انقدر فقط رو ویتو زاتش رو از باب تفعیل یعنی اوجی ولی ان ارویاها یعنی اوجیده دی انعکون راوی انده الاخرین در مرحوم شیخ خور را چون ایشون فهمون دارم یک اخصاصیه قصد المسنفی ایشون خب میگه از این عبارت مرحوم شده که اونایی که با انده مسنف بوده محل اشکالشون شیخ خور میگه همه خوبه هم کتاب فقیه خوبه و هم مثلا ایلر و خوبه ایشون میگه لا یجلو على التن من ال مصنفات المعتبره الا مخصوصه حسب غیر جمعی ما رو ایشون میگه که مرادش اینه که مثلا شیخ توسی زمان شیخ صدوق نبوده ایشون حذیه غیر از من تمام روایت آمدن و رجعه هو عن احد الثراتین به دقت دقتین چی مخواست شیخ خوهر بگید؟ شیخ خوهر بگید ترجیح میدن اما این ترجیح معناه نیست که اون مرجوه باطله ورد جهوه احد اهل طرف چون تو مقام عمله اما به لحاظ صدور اون مرجوه هم صادر شده این فهم مرجوه شیخ خوهره میگه اون مرجوه هم صادر شده نه اینکه اون مرجوه صادر نشده فقط داشته عمل نمیشه دقتین دقتین باید رو هم ایشون قصد المصنفی رو اینجور برمه کرده البته ایشون میگه کمافه على شغل تحضیب و استفساد مثال ایشون که خوب نبود چون تحضیب استفساد که بعد از صدوها نمیشه صدوها زبانه باشه وقتی چی میگه بر نتیجه ولا یو نافیداله که سبوت از طرف المرجوه همه در ترجیح با راجهه اما مرجو هم هست پس در مصنفات مشهوره همه ساجه همه بگه بکنیم اما تو مقام حمل اگر تعالصون صاد راضی حمل میکنید اما نه اینکه مرجوه صادر نشوده پس کنید مرجو صادر شود به خاطر تقیه میگه عبارت صدوق مشعر به این نیست که مرجوح که مصنفات در غیر ای این کتاب که مصنفاته اونها صادر نشودن بلزون میگه و عن الصدوق فلم يرد معارضات الا نادران راست این کلام ایشون درسته داره چون در بعضی جاها موارد تهاجوز داره زیاد نیست شاید از اندازه آن بزرگزدتی چند مورد بیشتر باشه دستور این یه با کلینی میده میگه بالا با اوجاع در کلینی محمد ابو کلینی رو واسه ما که صفوار اگر تضایات از زمینه ما военی خلافش من عمل میگم به واسه نه به واسه کلینی راسته شما الان حسابان کرد اون می انهم تقدو یا مراد این باشه ایلا ایران جمیع مارواب یا روهو حالا زرستبنده لیکن نه هم یوزعفون مالای عملونه به اونه که عمل نمیکنن کنن میکنن، حال کنن معارض باش یا نباشه لیکن تضعیف کردن معناش این نیست که سادر نشده باشه او یه تعرضون به تعویل دیگه کما فعله فی باقی کتبه یعنی مرمون صدوب در بقیه کتبش هم این کاره می, می یا میاره میکنه، یا تضییق بکنه اینم معنای دوم که احتمال داده هر از ایشون مخاطب خلاصش اینو میگه خلاصه اینو مطلب رو بگم ایشون مخاطب بگه نمیخواد صدوق بگه اون چه در کتاب منه صحیح در مصنفات صحیح نیست نه تو مصنفات هم صحیح عملش میکنه یعنی صادره یعنی مرادش اینه در مصنفات هم صادره اما عمل و ويوم که يكون اعراض المصنفين من اصناف الذين كتبهم معتمده و غيرهم مراد این باشه لكن المصنفات المعتنذه لم تزل متميزه عن غيرها حتى في هذا الزمان كما يقول محدث الباهر ماهر حمد بن الزمان تا توجيه بود تيشن براي صدوق این صحافت هم خیلی خلاف ظاهر. حبا <تصفيق> مشکل اخباری این برداشون رو هم میگن. خیلی در فهم دریجو این این صحافت. از کلم صحافت هم گفتم چون حالا اینجا شد. ظاهرا گفته شد. ولی این قیل از این ایشون میگن مراد مرمون صدوق تعریق به کافیه. که من کتاب هم رو کافی نمیشم. اما دیدم برزیه نشه نمی از کجا گفتن نمی هیچ اشعاری عبارت نداره اصولا ما اعرض کردیم کتاب کافی هم مثل صدوقه به اصطلاح امروزی ها گزینش خیارات یعنی اختیارات صدوق در فقیم مورد کلی هم اختیار تو کافیه بود. هر دو کتاب هم هستن هم کافی هم غقی بله تحضیح و استفسار گذینشی نیستن دو کتاب هم نظر و بنا استفسار هیچ کدومشون گزینشی نیستن اما کتاب کافی گزینشی چیزی که بیان مراد ایشون نفی کتاب کافی است من نمیباره. دیدم جایallowed شده خب یا اعضاء روح کرد تو عبارات مشعز نیست و اما مراد مرحوم شیخ صدوق این عبارت این اشاره به اینه که در اون زمان متعارف شده شو یاد باشه احساسمون نکرده اینشال می‌کنم ما ببینید شما احمد رضو الله در مصنوع خودش مثلاً 2000 حدیث بیشتر از آن کرده حدیث ولی اما این کل حدیثی نیست که یشون کرده یشون یه مقدار زیادی از حدیث ناظر کرده در مصنوع که مصنوع بوده بر پدرش مصنوع داره که اصلاحات زیاداته زیادات عبدالله علاآمین زیی عبدالله نه احمد رضو الله همون زیاده ام گه حدس نیا می‌گی یه که وارد نبوده مثلاً اون قدیم، زیادات چون بلا خاصله به مثلا مصند عبی هره مصند بعد از مصند اومد ناشه و زیادات عبدالله بازم داره حدستان عبی هم تو خود مصند حدستان عبی هم هم که زیادات آتا رو شیال میکنید یکی هسته اینسته به دو دوتاست اینقدر با هم نزدیکه و لذا هست کنم که رو اولین کسی که از مصند احمد موجود به سا حدیث نرکل لاز امام شیخو شریعه لعنه که اون می‌شناسید از مسند احمد حدیث لازار رو نقل کرده فرضشون میگه همه اصحاب معنی گذاری گذشته شدن همه اصحاب نقل کردن لکی در حقیقت این مال مسند نیست مال زيادات عبد الله است میشه شیخ شریعه ترجم نکرده این در مسند ابوالخیر بن ثابت از زياد مسند ابوالخیر بن ثابت از زياد و از زيادات عبد این زيادات عبد اللهش متعدی نشده اینکه بیاذ خواستش نباشه یعنی که مستد یکی این دو تا کتاب اینه این که شافتش یک دو تا کتاب سنن حجتنا عزیز در هر حدیثون عزیز یعنی احمد بن حنبل حدیث نقل کرده اونی که خودش در اون داشته تو مسند آورده بقیه دیگه مستد نآورده این غلط بوده این احساس این که وقتی بقولی که ولی این تانج بوده الان میخوام من وارد اون بحث بشم این بحث این طور بوده که دو جور تعدیف می داشتن یکی که دیر نهایتا قبول داشتن که حجت بوده و یا با تعدیف من بوده حدثون بگیر بین الله بوده یکی مسنفات بوده مراد از کلمه مسنفاتم یعنی کتبی بوده که در یک سنف بوده مثلا مرمون سرده و هر حدیثی که توش لعن نظاره جمع کرده روشه اعلام شرایط هر حدیثی که توش معنی خبر مثلا معنی خلان از س هر حدیثی که دوش عدد داره یه دو سه چهار پنج سا ده. جمع کرده دوش شه سال یه موده رو استقاها مسنف میگفتن مسنف یعنی اینا مجموعه یه از روایات تحت یک عنوان بوده مثل عنوان ادب عنوان لحنه اینا رو جمع میکردن وقت می ما در مصنفات دقت نمی کنیم در مصنفات چون هدفمون اون عدده آنه مخواد حدیث دمت صحیح باشه یا نباشه دقیق میکنی؟ زاهران سال وسائل مخواد این محضبه قبول نکنی بگه چون کتاب خسال یا علال شرایط یا معان الاخبار صدق جزه کتاب توجی، توجی و عروفه از اونا لذا حجته لذای توجیه توجیه ها تسال وسائل بگرد فرمی درستانی که این نیست مراد صدق همینیست که ما نرس کردیم مخواد که این بله من نه وقت توضیح لازم شد، الان خلال بحثیام توضیحش خواهم داد. مرحوم صالح ادایغه رساله‌ای داره در اعتماد جنب به نفات و نیته، از اون دیگری باز میشه. نه این راه مرحوم صدوق. و اون این که نه مرحوم شیوه اون این که در غیر کتاب صحیح هم اگر صدوق روایتی اوو و تعلیق نظر قبول داره. اونجا اینجور گفته ایشون. سوال گفتم مثلا راست مثلا در علاق شرایق های حدیث میاره بعد میاره قال ابو جعفر قال محمد نعلیه من حسیم مصنفه ها در حدیث لا اعماقه داره توی علاق شرایق هست بعضی جات زیرش تعلیق بعد از حدیث اشار میکنه اون وقت این جاها رو مرحوم صاحبه اینا این ها خواهده اونه که تعلیق میزنه اگر تعلیق نظر قبول داره پس منو که این عبادت من اونو خوب دهن که اینا مرحوم و اینه. اگر تو خخصصال هم باشه تو اعله شرای هم باشه قبول میشه <تصفيق> چون عبارتش داره و هم عخصاس بیا قتل ممسنده این عبارت رو سعی کردن تعویل بکنن در این مطلب و کن فلوامه اینطور نیست این زمین نیست مطلب اصلا نهطل سال هداات در روست با مراج ذریش، نهطل معومه همین رسال جمعله نرممت فسه میگه این خبیشون شیخ صلو تنها کسی که این روات اوافته نظالله که ا فاطمه های شباهره ها که ج نفااجه. بذار ف... کتاب تاریخی هم نه بوده، فقه هاشم توی مغنایونان بوده. فقط تو علم شرایعه بوده. کاملا واضحه، یعنی کاملا کاملا واضحه. نه موانی مصدرشناسی و حدیث شناسی توی کتاب دیگه به مثال مصدر شناسیش براتون بگم. چون استادش ابن الولید میگفت کتاب کتب یونس نسخه محمد بن قابل اعتماد نیست. خوب دقت بکنه در هیچ جای فرید از محمد بن عیسی از یونس نقل میکنه از محمد بن عیسی نقل می کنه از یونس هم نقل طوری میشه یونس تنوشه از یونس کلا نقل میکنه چون یونس به قومیا خوشنام نبود از یونس کلا نقل میکنه کنه در 15 مورد کل نقل از یونسش خیلی نادره اما شما ببین تو کتاب ال ال شرایط ال ما محمد بن عیسی از یونس چه عجیبه یعنی تو با کمال دقت حتی یک حدیث که محمدی نیست و انیونوت باشه نقلی حالا غیر از خود حدیث حتی به لحاظ معدرسناسی اینقدر دقت درسه فوق العاده انصافا من چند بار فیلم‌ها دراز ازم چی صد در معرفت الحدیث حالا به اون ذهنیت خودش و در قدرت و در تغید دقیق 100 صد درصدی ایشان به لحن دقیق و متن حدیث این خیلی عجیبه در کده وحشتناک انصافا عقلیه ها در این قسمت‌ها فوق العاده است. یعنی احساسی ضعیف، فوق العاده هم زیاد داره. فوق العاده ضعیف. یعنی بیش از اون که آدم تصور بکنه. به همیشه و در و دامون ایشان داره، با اینکه به نظر ما هدفش حفظ میراث بوده. غرض هم اینه که خوب دقت بفرمایید، مرحوم صدوق قدس الله سره این خلاف این مطلبی که اینجای شیخ اوهر فرمزه. چون نگاوره گفتیم که می‌خواد مسلک اخباری‌ها رو بگیم، اونم نمی‌شه منظور خیلی هم دیگه کردن با اون مسئولیا. ما قاعده هم نمی‌شه. حالا بگیم این بیجاز ارس دارم که یکیش همین که حوز خوندن برام دادشان باز شهر نداری که پیش آمده شهر اینا سری کردن بگن چون کتاب خصال یا الا شدود مشهوره هست پس این هم حجته وقیه عبارت صدور رو سعی کردن تعبیر بکنن روشن شد که تعبیر بعد نمیداره حق در مقام اینه که مرمون صدوق نظر مبارکش توی اینه من در کتاب خودم و این چیز تازه ایم ترچه بودند من اون بودن چهتون شد به اصلاح حدیث وارد نبوشن این یک امر متعارفی بود دقت بکنین کاملا متعارف بود حدیث بگه اما واردش نکنه انواع بوداره من یکیشه گفتم انواع اصلا بحثت طولانی داری آروم بکیدوا مستندات مراجعه بکنید الهاماتکی چاپیچ مال پسرش حات عبدالله همیشه یه یه چند غیر عبدالله چوش حادثه نامه خود یعنی اما خودش رو مستند کرده قبول کرده زمان بوده و صدوق هم نظر اونوارکش به اینه من روایاتم زیاده اما در کتاب فقی خصوص اون روایاتی رو میگم که بهش عمل میکنم و قبول دارم و حجت میدونن در بقیه که مصنفاتل نه اونجا هر چی رواده هست نعبول میکنن ظاهیر باید و این توجیه محومه صاحب و صاحب و حداره اخواری دیگه قابل قبول میدونم